فصل بیست و وقتی تلفن زنگ زد چند لحظه گیج بودم حواسم به زنگ خانه بود که اگر لئو زنگ زد به موقع در را برایش باز کنم گیتار را زمین گذاشتم مدتی به تلفنی که زنگ می زد خیره شدم و گوشی را برداشتم گفتم الو لئو گفت هانس گفتم بله خوشحالم که میایی ساکت ماند صرفه خفیفی کرد و گفت برایت پول جور کردم صدایش به ویژه وقتی واژه پول را گفت تنین غریبی داشت لئو تصورات غریبی درباره پول دارد او تقریبا هیچ گونه احتیازی ندارد سیگار نمیکشد، مشروب نمیخورد، روزنامه های عصر را نمیخواند و فقط وقتی به سینما میرود که لاغل پنج نفر که مورد اعتماد او باشند فیلم را به عنوان فیلمی قابل دیدن توصیه کرده باشند و این جریان هر دو یا سه سال یک بار اتفاق میافتد. او ترجیح می دهد پیاده برود تا سوار تراموه شود وقتی گفت پول حال خوشی که داشتم از دست رفت اگر می گفت کمی پول می شود حد زد که حدود دو سه مارک است آب دهانم را با ترس فرو دادم و با صدایی گرفته پرسیدم چقدر برایم جور کردی؟ گفت آه شش مارک و هفتاد فنینگ برای او مبلغ زیادی بود فکر کنم برای چیزی که به آن نیازهای شخصی میگویند این پول برای دو ساله او کافی بود. گاهگاهی یک بلیت تراموا، یک لول قرص نعنا ده فنینگ به یک گدا او حتی به کبریت هم اتیاز ندارد و اگر زمانی یک بسته بخرد برای رواسییس که می خواهد سیگارشان را رو روشن کند. همین یک بسته برای یک سالش کفایت می کند و اگر یک سال تمام هم بسته کبر توی جیبش بماند باز هم مثل روز اولش نو به نظر می رسد طبیعتاً مزور از گاهی به آرایشگاه برود ولی مطمئناً پول آن را از حساب تحصیلی که پدر برایش باز بر می دارد. پیش از این گاهی پول برای خرید بلیت کنسرت میداد ولی بیشتر از بلیتهای افتخاری مادر استفاده می کرد. آدمهای پولدار خیلی بیشتر از آدمهای فقیر هدیه میگیرند و اگر مجبور به خرید کردن باشند، اغلب آن را ارزان تر میخرند مادر یک کتابچه پر از اسم آدرس بنکدارها داشت می توانم تصور کنم که او طعم را هم ارزان تر میخرید شش مارک و هفتاد فنینگ برای لئوپول زیادی بود برای من هم, هم همینطور به ویژه در این شرایط ولی او شاید هنوز نمیداند که من آنطور که همیشه در خانه دربارش حرف میزدیم بدون آیدی هستم گفتم باشد لو خیلی ممنون وقتی میای یک پاکت سیگار هم برایم بخر صدای صرفهاش را شنیدم ولی جوابی نداد پرسیدم هنوز صدایم را میشنوی شاید از اینکه گفته بودم از پول خودش برایم سیگار بخرد ناراحت شده بود گفت بله بله فقط کلمات را مزه مزه کرد و با لکنت گفت فقط برایم مشکل است که به تو بگویم نمیتوانم بیایم فریاد زدم چی؟ نمیتوانی بیایی؟ گفت یک روب به نو هست و من باید ساعت نو در اتاقم باشم گفتم و اگر دیر بروی از کلیسا اخراجت می کنند ناراحت گفت آخ دست از این حرفا بردار گفتم نمیتوانی تقاضای مرخصی اضطراری یا چیزی شبیه آن کنی؟ گفت الان نه این کار را باید ظهر می کردم گفتم اگر بدون اجازه دیر بروی چه؟ آهسته گفت آن وقت باید تن به یک آدهورتاسیون سخت بدهم گفتم اگر لاتین از یادم نرفته باشد معنیش باید چیزی شبیه به باغ باشد کمی خندید و گفت بیشتر شبیه قیچی باغ بانیست چیز نارد کننده ایست گفتم مانعی ندارد لعوه نمیخواهم نمیخوام مجبورت کنم این بازجویی ناراحت کننده را تحمل کنی ولی به وجود کسی احتیاج دارم آرامم خواهد کرد گفت جریان پیچیده است تو باید موقعیت مرا درک کنی حرفی ندارم توبیخ شوم ولی اگر در این هفته یک بار دیگر توبیخ شوم آن را در پرونده ام آورند و من باید به اسکوراطینیوم جواب پس بدهم گفتم کجا لطفا آهسته تلفظ کن آه کشید، کمی غورید و آیسته گفت سکروتینیوم گفتم لعنت تو آه تنین واجه توریز که انگار دارند هشره تشریح میکنند به نظر آنجا هم مثل آی آر ناین آناست آنجا هم فورا همه چیز را توی پرونده ثبت میکردند مثل کسانی که سوه سابقه دارند گفت خدای منانس آنست همین چند دقیقه را درباره نظام تربیتی ما بحث کنی؟ گفتم اگر برایت تا این حد ناراحت کننده است دیگر حرفی نمیزنم ولی مثل IR9 باید راهی وجود داشته باشد منظورم بیراه است از روی دیوار پریدن یا چیزهای شبیه به آن همیشه راه فراری در سیستمهای سخت گیرانه وجود دارد گفت بله مثل ارتش راه فرار هست ولی من از این راه متنفرم و میخواهم راه مستقیم خودم را بروم گفتم: « نمیتوانی توانی به خاطر من بر نفرتت غلبه کنی و یک بار هم شده از دیوار بالا بروی؟ آه کشید. می توانستم تجسم کنم که چگونه سرش را تکان می نمیتوانی تو صبح صبر کنی؟ منظورم این است که میتوانم از درس در بروم و حدود ساعت نه پیش تو باشم. موضوع اینقدر فوری است یا باز هم آزم سفری؟ گفتم: نه؟ مدتی در بون می مانم دست کم آدرس هاینریش بلن را بده میخواهم به او تلفن کنم. شاید از کلن یا هر جایی که هست به اینجا بیاید چون من زانویم زخمی است بدون پول و بیکار هستم و ماری هم ترکم کرده است البته فردا صبح هم هنوز زخمی بدون پول بدون کار و بدون ماری میمانن پس موضوع آنقدر هم حیاتی نیست. ولی شاید هاینریش در این مدت کشیش شده باشد و یک دوچرخه موتوری یا چیزی داشته باشد هنوز گوش می دهی؟ مبهود گفت بله گفتم بس خواهش می کنم آدرس و شماره تلفنش را به من بده سکوت کرد دیگر آه نمی کشید. مثل کسی که صد سال تمام روی صندلی اطراف نشسته باشد و درباره باره گناهان و های بشریت آه کشیده باشد بالاخره خود را مجبور به حرف زدن کرد پس تو چیزی نمیدانی؟ فریاد زدم چی را نمیدانم خدای من لعو واضح حرف بزن آهسته گفت هاین ریش دیگر کشیش نیست گفتم فکر میکردم آدم تا نفس میکشد کشیش میماند گفت درست است منظورم این است که دیگر سر کارش نیست رفته است از چند ماه پیش غیبش زده حرف زدن درباره این اخبار برایش سخت بود گفتم دوباره سر و پیدا می شود بعد چیزی به یادم آمد و پرسیدم تنهاست لعو با لحنی رسمی گفت نه با یک دختر رفته است لحنش چنان بود که انگار می گفت تا اون گریبان گیرش شده است دلم به حال دخترک سوخت او مطمئنن کاتولیک بود و باید برایش ناراحت کننده باشد با یک کشیش سابق، حالا جایی در یک خانه محقر، چنبات باتم بزند و جزئیات طلب جسمانی را تحمل کند های زیر پراکنده زیر شلواری بند شلوار نعل بکی با تحزیگار بلیت پاره شده سینما و تنگنای مالی که در حال شروع شدن است و وقتی دخترک از پله‌ها پای میرود که نان سیگار یا یک بطری شراب بخرد زنک غرغروی صاحبخانه در را باز می‌کند و او حتی نمیتواند فریاد بکشد شوهرم یک هنرمند است بله یک هنرمند نه دلم به حال هر دوشان میسوخت برای دخترک بیشتر از هاینریش مقامات کلیسا در چنین موردی که مربوط به یک کمک کشیش بی اهمیت میشود بیشتر سخت گیری میکنند در مورد افرادی مانند زمرویل شاید چشم هم بگذارند. او در خانه خدمتکاری که پوست پایش زرد باشد ندارد بلکه موجودی قشنگ و شاداب در خانه دارد که مادالنا صددااش میزنند. آشپزی بسیار عالی که همیشه به سر و وضعش میرسد و خندان است. گفتم پس فعلا ریش را ختم میکشم. لو گفت خدای من تو خیلی خون سردی و راحت با قضیه برخورد میکنی. گفتم من نه اسخف مسئول ها ریشم و نه کاری که کرده برایم جالب است. فقط جزئیات این جریان باعث ناراحتی هم می میشود. آدرس یا شماره تلفنی از ادگار داری؟ گفت بنظورت وینکن است. گفتم بله. هنوز که ادگار را فراموش نکرد در کلن در خانه ما همدیگر را دیدید و ما همیشه در خانه آنها بازی میکردیم و سالاد سیب زمینی میخوردیم. گفت: البته که یادم میآید اما وینکن تا آنجا که من میدانم اینجا نیست. یک نفر برایم گفت که او به همراه یک کمیسیون به یک سفر مطالعاتی رفته. نمیدانم به هند یا تایلند پرسیدم: مطئنی؟ گفت: تقریباه حالا یادم آمد. هریبرت برایم تعریف کرد فریاد زدم کی به تو گفت؟ سکوت کرد دیگر حتی آه کشیدنش را هم نمیشنیدم. و حالا می چرا نمیخواست پیش من بیاید یک بار دیگر فریاد زدم گفتی چی؟ جوابی نداد او حتی صرفه صندلی اعتراف را یاد گرفته بود صرفهی که من وقتی در کلیسا منتظر ماری بودم میشنیدم. آهسته گفتم بهتر از فردا هم نیایی. حیف است که در سطر را ول کنی. فقط به من بگو که تو ماری را هم دیدی؟ به نظر می میرسید غیر از آه کشیدن و صحه کردن چیز دیگری یاد نگرفته است. دوباره آه کشید. آهی عمیق بلند و غمگین. گفتم: نمی نمیخواهم جواب بدهی. فقط به مرد خوشمشربی که امروز دوبار با او تلفنی حرف زدم سلام برسان. آهسته پرسید. اشتودر گفتم اسمش را نمیدانم ولی صدای گرم و مهربانی داشت گفت ولی او را هیچ کس جدی نمیگیرد او چطور بگویم به او محض رضای خدا نان میدهند لئو بالاخره موفق شد صدای شبیه به خندیدن از خود درآورد <تصفح> او بعضی وقتها یواشکی خودش را به تلفن میرساند و چرند میبافد بلند شدم و از شکاف پرده نگاهی به ساعت میدان انداختم سه دقیقه به نه مانده بود گفتم دیگر باید بروی وگرنه گرنه در پروندهت می نویسند فردا هم نمیخواهد در درست رو کنی حیف است از دستش بدهی التماس کنان گفت خواهش بکنم موقعیت رو درک کن گفتم لعنتی من موقعیتت رو درک می کنم. خیلی هم خوب درک می کنم. پرسید تو واقعا چجور آدمی هستی؟ گفتم یک دلغک که لحظات را جمع می کند خداافظ ب گوشی را گذاشتم.